زور افسون از گروه جوان و فرهنگ به نام خدایی که خالق زیبایی هاست سلام افثانه ها وسیله و بحانهی برای پند گرفتن و حکمت ها موختنن ایرانی نقاشی دقیقین از اونچه که طی تاریخ بر مردم این سرزمین پهناور گذشته یعنی همونطوری که بسیاری از حقایق تلخ رو در قالب مسئله ها و تمثیل ها بیان میکنن خیلی از وقایع تاریخی، اجتماعی و اخلاقی رو هم در غالب قصه و افسانه ریختن. امشب دست داریم براتون ای نقل کنیم که خیلی از شما دوستان برامی هزار افسان، اونو با کمی تفاوت از بزرگترهای خودتون شنیدید و در خاطراتتون مونده، افسانه زن و کلاغ برگرفته از کتاب نمونه‌هایی از قصه‌های ایرانی به گردآوری افشین نادری روزی روزگاری زن و مرد فقیری بودند که چند تا بچه قد و نیم داشتند. اونا در نهایت فقر و نداری زندگی میکردند، به طوری که حسرت خوردن یک غذای کامل به دلشون مونده بود. روزی از روزها زن تصمیم گرفت برای بچه هاش یه وعده آب درست کنه. برای همین هم مدتها ده شایی و پنج شایی رو روی هم گذاشت و وقتی پول دو سیر گوشت فراهم شد با خوشحالی به دکان قصابی رفت و دو سیر گوشت تازه خرید و به خونه شا بود. بچه ها از اینکه مادرشون میخواست براشون آب گوشت درست کنه از خوشحالی سر از پا نمی‌شناختن و مرتب توی دست و پای مادر میپیچیدن. مادر به گفت اگه میخواین من با خیال راحت براتون آبگوشت درست کنم از دورو بر من برین کنار. بچهها به حیات رفتن و مشغول بازی شدن. زن خواست گوشت رو خورد کنه یه حدید که چاغور رو نیورده. بلند شد رفت تا چاغور رو بیاره. در این موقع کلاگی که روی درخت بود از فرصت استفاده کرد و گوشت رو برداشت و به آشیونه خودش بود. زن که برگشت دید ای داد و بیداد گوشت رو کلاق برده زن بلافاصله به زیر درختی که کلاق روی اون لونه داشت رفت و به کلاق گفت ای کلاق خدا را خوش میاد تو گوشی رو که من با هزار بدبختی پولش رو جور کردم برداری آخه تو که میتونی همه جا پرواز کنی خب برو توی خونه ثروتمندا و گوشتای اونا رو ببر نگوشت شام بچه های بیچاره من بچه های من بعد از مدت ها خواستن گوشت درست و حسابی بخورن این انصافه و شروع کرد به آه و ناله کردن چلاق که حال زار زن رو دید دلش به حال اون سوخت و گفت من گوشتت رو به بچه هام دادم دیگه گوشتی در کار نیست ولی در عوض بهت یه دیگ میدم زن با ناراحتی گفت دیگ؟ دیگ به چه درد من میخوره؟ من چی دارم که توی اون دیگ درست کنم؟ کلاق گفت نه نه این یه دیگ معمولی نیست هر وقت اونو روی اجاق بذاری و کفگیر به اون بزنی و بگی پلو به پر از پلو میشه زن با خوشحالی گفت ها اگه اینجوری که میگی باشه خیلی خوبه دیگه بچه هیچ وقت گرسته نمیمونن کلاق گفت برو خونه و اونو امتحان کن زن با خوشحالی دیگ رو برداشت و رفت خونه به محض ورودش به بخونه فورا دیگ رو روی اجاق گذاشت و کفگیر رو به ته اون زد و گفت پلو بپس یه دفعه دیگ پر از پلو شد زن ناباورانه شوهر و بچهاش رو صدا زد بچه ها بچه بیاین پلو پلو آماده است بیاین بچه ها با تعجب به دیگه پر از پلو خیره موندن و بعد شروع کردن بخوردن خلاصه اون شب همه افراد خانواده شکمی از ازاد در از فردای اون روز زن و شوهر شروع کردن به فروختن پلو. کم کم از این راه سرمایه به دست آوردن و خونه و لوازم زندگیشون رو تغییر دادن. دیگه خونه اونها اون خونه کوچیک خالی از وسایل نبود. همه چیز عوض شده بود. تا اینکه روزی زن به شوهرش گفت: ای مرد، بهتر بریو. پادشاه و درباریانش رو دعوت کنی میخوام یه پلوی حسابی به اونا بدم مرد رو کرد به زن و گفت این چه کاریه زن برای خودمون دردسر درست نکنیم مگه پادشاه پلو نخورده است اصلا ما چه به دعوت پادشاه زن با ناراحتی گفت چرا متوجه نیستی مرد اینجوری ما معروف میشیم معروف مرد گفت زن آدم باید با قاشق پدر و مادرش غذا بخوره فهمیدی؟ زن با عقب گفت که چی؟ چرا نمیخوای دیگرون بفهمن که ما برای خودمون کسی شدیم؟ مرد گفت آخه مگه پدر مادر ما از این کارا کردن که ما دومی اونا باشیم ها؟ زن گفت اونا نداشتن ولی ما که داریم پس چرا این کار نکنیم ها؟ خلاص مرد هر هرچی گفت فایده نداشت و زن پاشو کرد توی یک کفش که من کاری به کار پدر مادرامون ندارم. اگه فردا شب پادشاه و درباریانش رو دعوت نکنید دیگه یه لحظه تو این خونه نمیمونم و میرم. حالا خود دانی. مرد بیچاره قبول کرد و رفت و پادشاه و وزرا و وکلا و خونواده ای اونا رو شام دعوت کرد. همگی در و همسایه ها تعجب کردند که یه رعیت چطوری میتونه از عهده پذیرایی این همه آدم اونم پادشاه و وزرا و و کلاش بر بیاد. فردا یه روز بعد نزدیک غروب همه به خونه مرد اومدن و ردیف به ردیف نشستن و ساعتی بعد مرد صفری شام رو پنگ کرد. زن هم با خوشحالی به آشپزخونه رفت و دیگ رو روی اجا گذاشت و کفگیر رو به ته دیگ زد و گفت پلو بپس و اونقدر پلو از دی کشید و سر سفره گذاشت که همه سیر شدن و تازه پلو زیادیم زیادی هم سر سفره باقی موند. زن پادشاه یا همون ملکه که از این کار متعجب شده بود با خودش گفت: "عجب اینا این همه برنج رو از کجا آوردن؟ اگه تمام آشپزخونهشون پر از برنج بود بازم هم اینقدر نمیشد. باید یه سری سر تو این کار باشه." بعد به بهونه بلند شد و رفت پشت در آشپزخونه و سوراخ در نگاه کرد و دید که بله فقط یه دیک روی اجاقه و زن هی کفگیرو رو به ته اون میزنه و میگه پلو بپس و دیک هی پر از پلو میشه زن پادشاه متعجب و ناباورانه به نزد شوهرش برگشت ولی چیزی به روی خودش نید Ooh, ooh, ooh, ooh. ملکه به محض برگشتن به قصر تمام اون چیزی رو که در مورد دیگه جادویی دیده بود برای پادشاه تعریف کرد و پادشاه که سخت متعجب شده بود دستور داد تا زن و مرد رئیت و اون دیگه جادویی رو به قصر بیارن. زن نشسته اود و با آب و تاب داشت از مهمونی دیشب برای همسایی ها تعریف میکرد که یه دفعه افراد پادشاه ریختن و دست اون و شوهرش رو بستن و اونا رو با دیگ به حضور پادشاه بردن مرد بین راه به زنش میگفت دیدی دیدی گفتم از خیرین دعوت بگذار. بگذر قبول نکردی حالا خودت جواب پادشاه رو بده زن و مرد به قصر پادشاه رسیدن پادشاه انگار نه انگار شب گذشته مهمون اونا بوده فورا دستور داد اونقدر این زن و مرد رعیت رو بزنید تا دیگ رو به من بدن افراد پادشاه هم معطل نکردن و شروع کردن به زدن زن و مرد بیچاره. زنگ که دیگه طاقت کتک خوردن و نداشت به یکی از افراد پادشاه گفت: شما که دیگ رو برداشتید، پس دیگه از جون ما چی میخوای؟ افراد پادشاه گفتند: آوردن دیگ کافی نیست، باید دیگ رو به قبله عالم ببخشی. مرد که اینو شنید گفت: خب، این که زدن نداره. ما دیگه رو با کمال افتخار به پادشاه میبخشیم نزنیم. از شیر مادرم حلالتر افراد پادشاه هم دست از کتک زدن مرد و زن رعیت برداشتن و اونا در حالی که از ترس پادشاه و ملکه رو دعا میکردن با آه و ناله قصد رو ترک کردن و به طرف خونشون برو پردای اون روز زن رفت سراغ کلاغ و گفت ای کلاغ مهربون بیا و همون دو گوشت ما رو پس بده ما دیگه تو رو نخواستیم نزدیک بود پادشاه به خاطر دیگه تو ما رو بکشه کلاخ گفت من که گفتم دو گوشت شما رو به بچه هم دادم اونا خوردن از کجا برات گوشت بیارم زن گفت من گوشت رو با هزار بدبختی کلاق حرف زن رو قطع کرد و گفت ای بی نداره ای بی نداره من, من به جای دیک یه الاق بد میدم که هر وقت به اون بگی هی یه اشرفی برات میدازه زن با خوشحالی گفت اشرفی؟ راست میگی؟ بده،, بده،, بده اولاق رو بده قبوله قبوله قبوله زن با خوشحالی الاق رو گرفت و به خونه این بار هم از برکت وجود علاق وضع زندگی زن و مرد ریت تغییر کرد اونا هر وقت به اشرفی نیاز داشتن فوراً به علاق میگفتن هی hey! و الاق براشون اشرفی مینداخت روزها گذشت تا اینکه زن به سرش زد که سوار علاق بشه و به حموم بره مرد بیچاره گفت زن دست از این کارا بردار دعوتی پادشاه یادی رفته دیدی نزدیک بود خودمونو به کشتم بدیم زن با عقب گفت من میخوام سوار اولاق برم هموم اینجوری دوست دارم مرد گفت خب سواری اولاق دیگه باشد زن گفت الا و بلا من باید با همین اولاق برم و بعد سوار اولاق شد و به طرف هموم زنونه به راه افتاد به همون که رسید به زن همومی گفت این اولاغ رو به طویله ببر تا من از همون برگردم زن همومی افسار اولاغ رو گرفت و اونو هی کرد به طرف طویله اما یهو با گفتن هی اولاغ برای اون یه اشرفی انداخت <تصفح> زن همومی با تعجب اشرفی رو برداشت و دوباره اولاغ رو هی کرد باز هم یه عشق دیگه افتاد زن همومی که متوجه غیرعادی بودن اولاغ شده بود فوراً اونو به خونش برد و به جای اون یه اولاغ معمولی آورد و گذاشت توی طویله زن رئیت از هموم که در اومد رفت سراغ اولاغش و زن همومی الاق رو بهش داد زن رئیت فوراً فهمید که این الاق اولاغ خودش نیست و گفت برو برو علاق خودمو بیار این اولاغ من نیست زن همونی شروع کرد به داد و بیداد کردن که چرا دروغ میگی این الاق علاق خودته کسی اولاغت رو از طویل تکون نداده تازه مگه الاق با اولاغ چه فرقی داره؟ فرق داره؟ زن ریت اومد که بگه آره الاق من با علاقه دیگه فرق داره ولی از ترس پادشاه جرعت نکرد حقیقت رو بگه ترسید که به گوش پادشاه برسه و دوباره برشون درد سر بشه بنابراین هیچی نگفت و به خونشون برگرشت زن به خونه که رسید تموم ماجرا رو برای شوهرش تعریف کرد. مرد با عصبانیت گفت چرا اولاغ رو بردی؟ حالا بکش. تازه داشت وزمون سر و سامونی میگرفت. آه، اگه اگه پادشا بفهمی که ما همچی اولاغی داشتیم این دفعه دیگه از خونمون نمیگذره. بدبخت میشی، بدبخت. زن با چشم گریون به سراغ کلاغ رفت و گفت آقا؟ کلاغ. نگفتم چیزای تو به درد نمیخوره اون از دیگت اینم از علاقت اصلا همون دو سیر گوشت ما رو بده ما از خیلی چیزای تو گذشتیم دیگت نصیب پادشاه شد و علاقت نصیب زن همومی دست ما به چی بنده ها هیچی فقط بدبختی و نارد کلاق گفت قصه نخور. این دفعه چیزی بهت میدم که با اون هم دیگ رو پس بگیری هم اولاغ رو. زن با خوشحالی گفت، واقعا چطوری؟ کلاغ یه دونه کدو تنبل به زن داد و گفت. هر وقت به این کدو بگی چماغ به دست بیا بیرون از داخل کدو یه چماق بیرون میاد که اختیارش به دست توه و هر کس رو تو بگی میزنه. زن گفت آه، این خوبه این کدو میتونه تلافی کتکهایی رو که از دست افراد پادشاه خوردیم در بیاره و زن حمومی رو هم حسابی آدم کنه زن کدو رو از کلا گرفت و رفت خونه استراحتی کرد و رفت سراغ زن همومی و گفت ای زن خدا رو خوش نمیاد علاق منو پس بده زن همومی شروع کرد به داد و بیداد را انداختن و فریاد زد کارگرها کارگرها بیاین این زن دروگو رو از همون بیرون کنین توی چشم هم زدن چند زن کارگر اومدن و خواستن زن رو بیرون کنن که زن کدو رو زمین گذاشت و به اون گفت چماق به دست بیا بیرون در این موقع چماقی از توی کدو بیرون اومد و شروع کرد به زدن زن حمومی و کارگرهای هموم حالا نزن کی بزن خلاص سرکله همی اونا به ضرب چماق شکسته شد زن حمومی که دید هواپسه گفت غلط کردم تو راست میگی تو راست میگی من علاقت رو عوض کردم حالا حالا بگو دیگه نزنه من علاقت رو پس میدم زن به کدو گفت چماق برگرد سر جات و چماق به داخل کدو برگشت. زن همومی رفت و اولاغ زن رعیت را آورد و به اون پس داد و ازش اصخایی کرد زن الاق رو برد خونه و با خودش گفت فردا اول وقت باید برم سراغ پادشاه. این کدو حق منو از اون میگیره فردا اول وقت زن کدورو برداشت و رفت سراغ پادشاه نگه اونها که فکر میکردن زن کدورو عنوان هدیه برای پادشاه ورده فورا اونو به داخل قصر راه دادن زن هم یه راست رفت پیش پادشاه و بدون ترس گفت قبله عالم پادشاه باید به فکر رعیت باشه و اگه کسی مظلوم واقع شد داد اونو از ظالم بگیره نه اینکه خودش هم ظلم کنه و به زور مال مردم رو تصاحب کنه پادشاه هاج و واج به حرفای زن گوش داد زن ادامه داد پادشاه باید پادشاه که دیگه طاقت نداشت کلام زن رو قطع کرد و پرسید چی میخوای زن محکم جواب داد دیگ من دیگه رو میخوام فورا اونو پس بده وگرنه؟ پادشاه پادشا که از زن به خشم اومده بود با عصبانیت گفت وگرنه چی؟ جرأت داری؟ بگو زن کدو رو روی زمین گذاشت و گفت وگرنه این؟ و گفت چماخ به دست بیا بیرون و در عرض چند لحظه چماخ از توی کدو بیرون اومد و افتاد به جون پادشاه. پادشا زیر ضربات چماخ فریاد زد نگهبانها نگهبانها نگهبانها ها نگهبان شاه به ولی چماغ به جون اونها هم افتاد حالا نزن کی بزن نگهبانها ها که طاقت ضربات چماغ رو نداشتن فرار کردند و پادشاه موند چماغی که مرتب بر سر و صورتش فرود میومد. پادشاه که دید فایده ای نداره بزن گفت بد کردم ظلم کردم میدونم میدونم تو درست میگی حالا بگو نزنه هرچی بخوای به تو میدم پول جواهر پول هرچی بخوای زن خندید و گفت من فقط دیگم رو میخوام همین پادشاه در حالی که از شدت ضربات چماغ ناله میکرد رفت و دیگ زن ریعت رو آورد و به اون داد. افسانه ایرانی زن کلاه رو به نقل از کتاب نمونههایی از قصه‌های ایرانی به گردآوری افشین نادری براتون نقل کردم. افسانه ها مردمیترین هنرن که در اونها مسائل مردم و زندگی روزمره اونها در قالبی ساده جذاب و سرگرم کننده بیان میشه و همین یکی از دلایل فراگیر شدن افسانه هاست. هزار افسان کار مشترکی بود از نویسنده و سردبیر زینت سالحپور ویراستار سهیلا کریمی اجرا مهران دوستی بردار ستاری همیدی یه کننده زهرا عبدالله عاض تا افسانه دیگر بدروب